قلوت گذیده را به تماشا چه حاجت هست چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت هست جانا به حاجتی که تو را هست و خدا کاخردمی بپرس که ما را چه حاجت هست ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم آخر سوال کن که گدارا چه حاجت است؟ هر باب حاجتی و زبان سوال نیست در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است؟ جام جهان نماست ذمیر منیر دوست اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است آن شد که بار مننت ملاح بردمی گوهر چو دست داد به دریا جاجت است ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است ای عاشق گدا چلب روح بخش یار می داندت وظیفه تغازا چه حاجت است حافظ تو ختم کن که هنر خود ایان شود با مدعی نزا امهاکا چه حاجت است